قد سمع الله قول لتی تجادلك که في زوجها و الى الله والله يسمع تحاوركما این الله سمیع بصیر به الله سخن زنی را که درباری شوهرش با تو مجادل می کرد و به الله شکایت میبرد برد شنید و الله گفتگوی شما را میشنید بیگمان الله شنوای بیناست الذين یظاهرون منكم من نسائهم ما هن مهاتهم إن امهاتهم إلا اللاء ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُولٌ غَفُولٌ کسانی از شما که زنانشان را زهار می آنان هرگز مادرانشان نیستند مادرانشان فقط کسانیند که آنها را زاده ایگمان آنها سخنی زشت و دروغ میگویند و همانا الله کننده آمرزگار است والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبة فتحرير من قبل أن یتماس و کسانی که زنانشان را ظهار سپس از آنچه چه گفتند باز می گردند پس باید پیش از آمیزش جنسی با هم برد ای را آزاد کنند این است که به آن پند و اندرز داده میشوید.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 و برای کافران عذاب در نکیست. این‌الذین <تصفح> یوحّدون الله و رسوله کبتو کما کبتن الذين من قبلهم و قد أنزلنا آيات بينتیو وللكافرين عذاب مه.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 ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثادثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوما قيامة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 حسبهم جهنم و یصلونها فبئس المصیر ای پیامبر مگر ندیدهای ای کسانی را که از نجوا نه شدند سپس به آنچه از آن نه شده بودند باز میگردند و به گناه و تجاوز و نافرمانی پیامبر نجوا میکنند کنند و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تهیتی گویند با کلماتی که الله با آن تو را تهیت و سلام نگفته است و در دل خود میگویند چرا الله ما را به کیفر آنچه میگوییم عذاب نمی کند. جهنم برای آنها کافی است به آن وارد میشوند پس آن بد سرانجام و جایگاهی است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 الا الله الله المؤمنون جز این نیست که نجوا از سوی شیطان است تا کسانی را که ایمان آوردهاند اندوهگین سازد و جز به فرمان الله نمیتواند هیچ ضرری به آنها برساند پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند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 و را که علم داده شده اند بالا می برد و الله به آنچه میکنید آگاه است. یا ایوها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواكم صدقه ذلك خیر لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که میخواهید با رسول الله نجوا کنید پس پیش از نجوایتان صدقی در راه الله بدهید این کار برای شما بهتر و پاکیزه تر است پس اگر نیابید بیگمان الله آموزندی مهربان است. اشفقتم ان تقدموا بين يدين جواكم صدقات فاذا لم تفعلوا و تاب الله عليكم فأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الله ورسوله والله خبیر بما تعملون آیا از فقر ترسیدید که پیش از نجوایتان صدقاتی دهید پس چون چونین نکردید و الله از شما درگذشت پس نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و الله و پیام برش را اطاعت کنید و الله به آنچه می‌کنید آگاه است اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ای پیامبر، آیا ندیدی کسانی را که دوستی کردند با قومی که الله برانان خشم و غضب کرده است؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان، و بر دروغ سوگند یاد میکنند که مسلمان هستند، در حالی که خودشان میدانند که منافق هستند. اعد الله لهم عذاب شدیده، انهم ساء ما کانو یعملون. الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است، بیگمان بد است آنچه انجام میدادند. اتخذوا ايمانهم جنة صددوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهیم آنها سوگندهای خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند لذا برای آنها عذاب خارکننده است لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئه اولئیک اصحاب النار هم سیها خالدون هرگز اموالشان و فرزندانشان چیزی از عذاب الله را از آنها دف نخواهد کرد آنها اهل آتش دوزخند و جاودانه در آن میمانند. یوم يبعثهم الله جمیعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا هم الكاذبون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 استحود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاطرون شیطان برانها چیره شده.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 بیگمان الله نیرومند و شکست ناپذیر است لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وادون من حد الله ورسوله كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم.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 ای پیامبر، هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت دارند نمی یابی که با کسانی که با الله و رسولش دشمنی و مخالفت می دوستی کنند اگرچه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خیشاوندانشان باشند آنها کسانی هستند که الله ایمان را در صفحی دلهایشان نوشته است و به روحی از جانب خود آنها را تقویت و تایید نموده است و آنها را به باقهای از بهشت وارد می که نرها از زیر درختان انجاری است جاودانه در آن می مانند. الله از آنها خشنود است و آنها نیز از الله خوشنودند آنها حزب الله هستند آگاه باشید و بدانید همانا حزب الله رستگارانند. بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سبحانه لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز آنچه در آسمان هاب و آنچه در زمین است برای الله تسبیح میگویند و او پیروزمند حکیم است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 و قدف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بی ایدیهم و ایدی المؤمنی نفعت برویاء لیل ابصاب او کسیست که کتانی از اهل کتاب را که کافر شدند با خستین برخورد و گرد آوری لشکر از دیارشان بیرون راند گمان نمی کردید که آنها خارج شوند.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 و لولا ان كتب الله علیهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار و اگر الله ترک وطن و آبارگی را برانا مقرر نداشته بود یقینا آنها را در همین دنیا عذاب میکرد.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 ما قطعتم من لینه او تركتموها قائمتاً على اصولها فبی الله و الفاسقین آنچه از درخت خرما بریدید و یا آن را ایستاده بر ریش اشباقی گذاردید به فرمان الله بود تا فاسقان را خار و رسوا سازد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 والله الله على كل شيء قدیر و آنچه الله از اموال آنها به پیام برش بازگردانده و بخشیده است پس بر آن اموال نه اسبی تاختید و نه شتری ولی که الله رسولانش را بر هر کس بخواهد چیره میگرداند و الله بر هر چیز تواناست مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلَّهِ وللرسول وَلِرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَهُ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَرْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است پس خودداری کنید و از الله بترسید بیگمان الله سخت کیفر است لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ من دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا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 و الله و پیامبرش را یاری می کنند آنها راستگویانند یانند الذین تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم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 و در دلهای خود از آنچه به مهاجران داده شده احساس حسد و نیازی نمی کنند و آنها را بر خود مقدم می دارند هرچند خودشان نیازمند باشند و کسانی که از بخل و حرس نفس خیش بازداشته شده اند پس آنها را رستگارانند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 و نیز کسانی که بعد از آنها بعد از مهاجران و انصار آمدهاند میگویند پروردگارا، ما را و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان کین این نسبت به کسانی که ایمان آوردهاند قرار مده. پروردگارا، بیگمان تو رعوف و مهربانی.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 با این بوتیل تلنا سررا نک وله آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران اهل کتابشان که کف بردید اند میگویند اگر شما را از سرزمینتان بیرون کنند ما نیز با شما بیرون خواهیم آمد.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 کمثل الذین من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم داستان اینها همانند داستانی است که اندکی پیش از آنان بودند تعم عاقبت کار بدشان را چشیدند و برای آنها عذاب دردناکی است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 و ذالک جزاء الظالمین. پس سرانجام کار هردوی آنها این شد که هر دوی آنها در آتش دوزخ خواهند بود جاودانه در آن میمانند و این است کیفر ستمکاران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي كسانيكه إيمان آوردهئید از الله بترسيد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 اگر این قرآن را بر کوهی نازل میکردیم، یقینا یقیناً آن را از ترس الله خاک سار و از هم پاشیده می و این مسئله را برای مردم میزنیم شاید که بیندیشند شند الله الذي لا إله إلا هو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 سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون او الله است که جز او معبودی راستی نیست پادشاه نهایت پاک منزه و سالم از هر عیب ایمنی دهنده نگهبان پیروزمند جبار و شایسته عظمت و بزرگی است الله پاک و منظه است از آنچه برای او شریک می او هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الله است خالق نوآفرین نقشبند بینذیر برای او نام های نیک است آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او میگویند و او پیروزمند حکیم است بسم الله الرحمن الرحیم Yeah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 فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون إليهم بالمودة وانا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل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 این یسقفوکم یکونو لکم اعداء و یبسقو ایدیه هم و السنته هم بسوء لو تکفرون اگر آنها بر شما دست یابند دشمنانتان خواهند بود و به آزارتان دست و زبان می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 الله در میان شما جدایی ایمی اندازد و الله به آنچه انجام می دهید بیناست. قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفطنى بكم و بدابيننا و بينكم والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرنا لك وما أملك لك من الله من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 و الله تواناست و الله مهربان است لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فَأُولَئِكَ هم الظالمون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 إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار وَلَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُمْ وَلَا تُمْسِكُو بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا اَنفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا اَنفَقُوْ ذَلِكُمْ حكم اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 این بیو ایزا جاءک المؤمنات یبایعنک علا الا يشرکن بالله شیئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يأتین ببهتان یفترینه بين ایدیهن وارجلهن ولا يع صينك في معروف الله. إن الله غفور ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آمدند تا با تو بیعت کنند بر که چیزی را با الله شریک نسازند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 يا أيها الذين آمنوا لا تتوالوا قوما غضب الله علىهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور اي كساني ك ايمان آورد ايد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 سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تسبیح الله می گویند و او پیروزمند حکیم است یا ايها الذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزی را میگویید که عمل نمیکنید؟ نزد عند الله ان تقولو ما لا تفعلون الله سخت ناپسند و موجب به خشم است آنکه چیزی را بگویید که عمل نمیکنید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان <تصفيق> بی گمان الله کسانی را که چون بنیانی آهنین صف بسته در راه او پیکار میکنند دوست دارد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 هنگامی را که موسی به قومش گفت: ای قوم من چرا مرا آزار و اذیت می‌رسانید؟ در حالی که میدانید بی گمان من فرستاده‌ی الله به سوی شما هستم. پس چون آنها از حق منحرف شدند، الله دلهایشان را منحرف ساخت و الله قوم نافرمان را هدایت نمی‌کند. وَإِذْ طَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أحمد.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 یریدون لیطفعون نور الله بی والله مطم نورهی ولو کره الكافرون آدها میخواهند خواهند نور الله را بادهان خود خاموش کنند ولی الله کامل کننده نور خیش است هرچند کافرم خوش نداشته باشند هو ارسل رسوله بالهدى و دین الحق میظهره على الدین کلیه ولو کلیه المشرکون او است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند هرچند مشرکان خوش نداشته باشند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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انقاره الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت الطائفة من بني اسرائيل آمنوا على ای کسانی که ایمان آورده اید یاوران دین الله باشید همان گونه که عیسی پسر مریم به هواریون گفت چه کسانی یاوران من درد عبد به سوی الله هستند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 بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما في السماوات و ما في الأرض الملک القدوس العزیز الحكيم آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تسبیح الله می گویند. الله که فرمان رواه پاک پیروز مند حکیم است هو الذي بعث في الأمم رَسُولًا رسلا منهم يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين او کسی است که در میان درس ناخوانندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند با آنها را پاک و تسکیه میکند و به آنان کتاب و حکمت میآموزد و اگرچه پیش از این در گمراهی آشکار بودند و منهم لم و هو العزیز الحكيم. و نیز این پیام بر بر گروه دیگری از آنان برانگیخته شده که هنوز به آنها نپیوسته اند و او پیروز منده حکیم است. لَكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذو الْعَظِيمِ این فضل الله است که آن را به هر کس که بخواهد میبخشد و الله دارای فضل عظیم است. مثالِالذين الَّذِينَ من التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئث مثال القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهذى القوم الظالمين مثل کسانی که به تورات مکلف شدند آنگاه برنداشتند ان را چون خریست که کتاب هایی را حمل می کند اما از آن چیزی نمی فهمد چه بداست گروهی که آیات الله را تقزید کردند و الله گروه ستمکاران را هدایت نمی کند قل یا ایوها الذین هادو این لله من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 ابدن بما قدمت ایدیهم و الله علیمون ولی آنها به خاطر آنچه از پیش فرستاده اند هرگز آن آرزو را نخواهند کرد و الله ستمکاران را خوب میشناسد شناسد <تصفيق> قل الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقیکم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 انگاه شما را از آنچه انجام میدادید خبر میدهد. یا <تصفح> أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذر البيع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 فَإِذَا فا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پس هنگامی که نماس پایان یافت برای کس برس قروزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید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 ما گواهی می دهیم که یقینا تو فرستادی الله هستی و الله می داند که بیگمان تو فرستادی او هستی و الله گواهی می دهد که منافقان یقینا دروغگو هستند اتخذو ایمانهم جنتا فقدوا عن سبیل الله آنها سوگند های خود را سپر قرار دادند پس مردم را از راه الله باز داشتند به راستی کار بسیار بدی انجام می دهند.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 وَإِذَا وَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ طَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهِ و هنگامی که آنها را ببینی جسم و قیافشان تو را به شگفت آبرد و اگر سخنگویند به سخنانشان گوش فرا می دهی گویی آنها چوبهای تکیه داده به دیوارند هر بانگی را علیه خود میپندارند آنها دشمن واقعی هستند پس از آنان هزار باش، الله آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف میشوند شوند. و اذا قیل لهم تعالو یستغفر لكم رسول الله لو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 بیگمان الله قومی نافرمان را هدایت نمی کند. همّالذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يفضو وللله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون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 ولله العزت ولرسوله رسوله ولكن المؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون آنها میگویند: اگر به مدینه بازگردیم یقینا صاحبان عزت زلیلان را از آنجا بیرون میکنند در حالی که عزت از آن الله و فرستادی او و مؤمنان است ولي منافقان نمیدانند. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون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 هر بردگارا ای کاش مرگ مرا مدت کمی به تأخیر میانداختی تا در راه تو صدقه بدهم و از صالحان باشم و يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون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 یعلم ما في السماوات والأرض و ما تسرون وما تعلنون والله عليمون بذات الصدور آنچه را که در آسمانها و زمین است میداند و آنچه را که پنهان می دارید و آنچه را که آشکار میکنید میداند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 ای پیامبر بگو آری به پروردگارم سوگند یقینا همه برانگیخته خواهید شد آنگاه از آنچه می به شما خبر خواهند داد و این کار بر الله آسان است فآمنوا بالله و رسوله و النور انزلنا والله بما تعملون خبیر پس به الله و پیامبرش و نوری که نازل کرده این ایمان بیاورید و الله به آنچه می آگاه است یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ يُكْفِرَ عَنْهُ سِيَأَتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 این کامیابی بزرگ است. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها وبئس المصیر. پس کسانی که کافر شده‌اند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهل آتش دوزخند که کجاودان در آن میمانند و بد سرانجام و جایگاهی است ما اصاب من مصیبته الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شیء علیم هیچ مصیبتی به انسان نمیرسد، مگر به حکم و فرمان الله و هر کس به الله ایمان آورد. الله قلبش را هدایت می کند و الله به همه چیز داناست. و الله و اطیع الرسول فإن تولیتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين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 الله است که هیچ معبودی به حق جز او نیست، پس مؤمنان باید بر الله توکل کنند. یا <سؤال> ایوها الذین آمنوا، این من أزواجكم و اولادکم عدوا فاحذروهم، این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور ای کسانی که ایمان آورده اید به راستی بعضی از همسرانتان و فرزندانتان دشمنان شما هستند پس از آنها برحذر باشید و اگر عف کنید و چشم بپوشید و ببخشید بی الله آمور مهربان است. اینما اموالکم و اولادکم فتنه والله الله عنده اجر عظیم جز این نیست که اموالتان و اولادتان مایه آزمایش هستند و الله است که پاداش بزرگ نزده اوست فاتقوا اللهم استطعتم واسمعوا اسمعوا و, و خيرا لأنفسكم و ومن خیرا شح نفسه فالائک هم المفلحون پس تا جایی که می از الله بترسید و گوش دهید و فرمان برید و انفاق کنید که برای خود شما بهتر است و کسانی که از بخل و حرص نفس خود مسون بمانند آنانند که رستگارند این تقرض الله قرض حسن یضاعفه لكم و لكم والله شکور حلیم اگر به الله قرض الحسن بدهید آن را برای شما افزون میکند و شما را بیا مرزد و الله قدر شناس بردبار است عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم پنهان و آشکار و پیروزمند حکیم است بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فقلقوهن لعدهن وأحصل العد وتقوى الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا ولا يخرجنا الا ان ياتينا بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اي <تصفيق> ايامبر هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید پس آنها را در زمان آغاز عده طلاق دهید و حساب عده را نگهدارید. و از الله که پروردگار شماست بترسید نه شما آنها را از خانههایشان بیرون کنید و نه آنها بیرون روند مگر آنکه کار زشت آشکاری مرتکب شوند و این حدود الله است و هر کس از حدود الله تجاوز کند پس مسلما به خود ستم کرده است تو نمیدانی، شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فراهم آورد که به صلح و آشتی منجر شود تا بَلَغْنَ بلغنا اجلهم بِمَعْرُوفٍ بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل من كم واقيم الشهاده لله ذلك يعذب به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا پس چون آنها را طلاق دادید و عده آنها به سر رسید آنها را به طرز شایسته ای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 لا الله جعل و او را از روزي که گمان ندارد و هر کس بر الله توکل کند پس همان او را کافی است بیگمان الله فرمان خود را به انجام میرساند و الله برای هر چیزی اندازهای قرار داده است و اللائی مِنَ من المحیض من نزائیکم این ارتبتم فعزتهم أَشْهُرٍ اشهر و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 وَلَا ولا تضاروهن لتطيقو عليهم وإن كن أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَفِقُوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بینكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له خری آنان را در حد توانتان هر جائی که خودتان سکونت دارید سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید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 پس زن دیگری به درخواست شاهر او را شیر دهد لینفق ذو سعت من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق من ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها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 الله به بعد از سختی و تنگ دستی آسانی و گشایش قرار می دهد. و که من قریت عتت عن امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نکرا،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 و سرانجام کارشان زیان بود اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتق الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله اليکم ذکرا الله عذاب سختی برای آنها آماده کرده است پس ای خیرد که ایمان آبرده اید. از الله به ترسید الله ذکر را به سوی شما نازل کرده است رسولاً يتلو عليكم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عمل الصالحات من الظلمات اینان ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له رزقا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 قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم پرستی الله راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرر داشته است و الله دوستار و مولای شماست و او دانای حکیم است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 وإن تظاهر علي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك الله اي همسران پیامبر اگر شما دو نفر به درگاه الله توبه کنید به سود شماست بیگمان دلهایتان از حق منحرف گشته است و اگر شما دو نفر بر علیه او هم شوید پس بدانید که الله یاور و مولای اوست و نیز جبرئیل و مردمان شایسته از مؤمنان و فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان و مددکار او هستند عسى خلق کن أن يبدله أزواجا خيرا من کن مسلمات مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات عابدات، سائحات، سیبات و أبكارا. چه بسا اگر شما را طلاق دهد، پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جای گذین کند؟ که مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، بردار، توبکار، عبادت کننده، روزدار، بیوه و دوشیزه باشند یا ایوها الذین آمنو کنو انفسکم و اهلیکم نارا و وقودهن الناس عليها ملاك غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم و ما يأمرون. ایمان آورد اید.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 يا ایوها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم اینما تجزون ما كنتم تعملون ای کسانی که کافر امروز عذر خواهی نکنید جز این نیست که در برابر آنچه می کردید جزا داده می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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخذ الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اي کسانی که ایمان آوردید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 ای پیامبر با کفار و منافقان جهاد کن و برانها سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و بد جایگاهی است براد الله مثلا للذین کفر امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا فلن یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل النار مع الداخلین الله برای کسانی که کافر شده اند همسر نوح و همسر لوت را مثل زده از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 احطنت فرجها فنفصنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بنیزم مریم دختر عمران را مثل زده که شرمگاه خیش را پاک نگه داشت پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگارش و کتابهای او را تصدیق کرد و از فرمانبرداران بود